حديث النهم زين وارجح حديث بقول معروف كبار المحدثين روايت مكنا لحد ك دار مسد محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سوك عن سويد بن بطيس قال جلب جلبت انا وبخرفه العبدي ثياما من هجر بعث اللباسي من نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخذ اللباسي ازنها بخره در مقابل اون شربالي كي بوده لباسه با شربال ميخواستن باز عوض مكنه وزن ميكردن يعني پارچه با پارچه وزن ميكردن مثل الان مثلا جا ها که اینشه پارچه کیلوی وزنی حالا بحث فقهی این زیاده اینجا رسولان صلی اللہ علیه وسلم میگه ذن و ارجع به اون طرف وز قبلن که, که وز میکنه قبلا که خیلی که وز میکرد هم یک پولی هم بهش میدادن حالا که در بحث بیوع میاد مثلا که اگر کسی مثلا کاری برای خدمت انجام داد در مقابلش کرایش اون کاری که بذارت انجام میده انج... بهش بدی حالا با فروشنده است یا با خریدار این توافقیه اسب بر این که با خریدار باشه حالا این گفتم بسی بویو اینا من نمیخوام واردش بشم اون چیزی که مهمه در این گفتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این که رسول الله حق خودش تنازل میده یعنی میگه که اه... اه... یعنی سهم اونها رو بیشتر بذار مثلا مال من مثلا سنگی تر بشه مال اونها سبک تر بشه این یعنی هر چیزی که مثلا به فرض بالفرس... یعنی به معروف اگه مال خودش سبک تر خب مثلا مولانا سنگین‌تر می‌شد چون اونو می‌خواست بر بر بداره سهمش بیشتر بشه تجارتی که درش صدق باشه انسان صادق باشه هرچند که به قول معروف یک کمیزی رو بالا بشه اون صدق خودش خیر و برکت می‌اندازه تو مالت تو زندگیت انسان خصوصا من میگم یعنی خسن اختلافاتت خیلی زیاد بین دوستا پیش میاد در بحث مال دنیا بیشتر میگه این حق من زایعه کرده این گول بهم داده این شیطون وسط میاد نظر قاطی شیطانه همیشه تو از حق خودت کوتاه شاید مثلا طرف مثلا تو شاید به خود فکر بکنی که داره استفاده ازت میکنه درست اگر خانوا... مشکل خانوادگی مشکل مال و نمیدونم بدهی و قرضی، درست حق خود رو بگیر و قول من رو کسی باید عب نمیگیره مثلا ایران نمیگیره که پا فشاری کنی ولی اون چیزی که توصیه هست تو از حق خودت کوتاه بیای. که شیطان وسط نیاد نه که آقا سلام کله گذاشت نه اینکه آقا به قول معروف شیره مولد سلام فلان کرد از من سوء استفاده کرد این نزغات شیطانه و این من خیلی از اختلافات بین تولب من این 20 سالی که در طلبگی هست بین دوستام دیدم در مال دنیا خیلی چون ح... هر انسان احس ذاتش من نمیتونم نه خودم تبرئه کنم نه شما رو هممون وابستگی به مال دنیا داریم هممون یعنی به فرد مثلا بفرض من میگم آقا شما الان بله میشه بیاد بنده را بزنه بچتون ول بکنید کارو زندگی ول کنید بیاد دید دید. دوره کلاسی دوره هم بشه میاد نه هر کسی منفعت خودش رو بهتر میدونه خیر خودش رو بهتر میدونه کجاست کجا نیست نباید انسان به دل بگیره تا جایی که میتونه انسان خودش رو به غفلت بندازه المؤمن وغرون کریم صفات مؤمن اینه وال فاجر و خب لن فاجر خسیسه قداس دستنگ دست دلواز نیست ولی صفات مؤمن چی غرون کریم خودش رو به غفلت میزنه میدونه این مالش مثلا میارزه ارزه مثلا بل فرصد ببینم می ولی بای وجود کمتر میده از باب کرمش از باب اینکه طرف مقابلش سود و منفعت ببره اینها درسایی هست که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و که از حق خودش گذشت می کنه بخاطر اون اصحابش